تو از اون خش چت داد بزنم در اتاقو مکم میکو هم ولی باز هم گوشش دره که داره کهیه جتر زاره بین چی شده آدم همش نیاز داره که لبش شکاهک میره و یع یعنی کهتر مکم می و میست زندگی ما شده همین زندگی اون باتون و افکارمونه و افکان رو تغییر بدیم زندگی اون کللا تغییر میکنه ولی افکار تغییر درست حالا بهگذره فاض همه چیز فره بر ولی فقط بگم تنها چیزی که تو زندگی بدون تنش به دست میری شکست یک کار کردم کن زندگی رو بردن زیر سوال سوال مواقعی نیست که های زندگی پس از من وجود داره سوال مواقعی نکاه قبل از من زندگی کردی هیچ کس نمیفرند ما یه خطاکار هست نجات، دین، قرور قومی و منیگره هیچ تحصیل نداره بجزی این که یاد میدم تو از مردم که اشراق مرآل نکرده این متنفه باشه تو این کافی اشتماع می کنیم کم امفای آدم واسه مسئلت کردن به سخت کسایی که مدرم همین چیز رو می و همین چیز رو می تونن دروش در وقت به این می رسن تو کلی آدم ها دونیا رو باید کشن. شاید همین چیز رو و آخر به همین گوش